بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد صمد. ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا شریک في الملك فلم يكن لك ولي من الظل وكبره تكبيرا والصلاه والسلام على خير خلقه باشرف بريته سیدنا و مولانا حبیب الای اله ابو القاسم المصطفى محمد الله الله تعالی و سیما، ناموس الدهر و امام العصر، حجت ابن الحسن العسکری المهدی، ارواح الامتراو مقدم حلو صدا، فلانت الله علی عدای مجمعین، منال قیام یوم الدین خوب آرزو ما در این جلسات هفتگی روزهای جمعه به حول و قوه خداوند یه شرح کوتاهی بر زیارت امین الله که قبل از ماه مبارک رمضان در این جلسات هفتگی یکی دو جمله اول این زیارت رو یه شرح خیلی کوتاهی عرض کردم و گفتم این زیارت کلان یک سلام توشه که السلام و یا امین الله فی ارض و او علا عباده ولی تو بعضی این نسخه ها که آشخ خباس قومی هم تو هاشیه مفاتیح آورده یه سلام دومم براش هست که السلام سلام علیکه یا امیر المؤمنین خلاص ما این دو سلام رو قبل از ماه مبارک رمضان تو جلسات هفتگی شرح کوتاهی عرض کردند بعد از سلام این جمله آمده که امام زین العابدین علیه السلام در مورد امیرالمؤمنین می‌فرمایند اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده حضرت میفرمایند در مورد جدشون که من شهادت میدم که اولا تو مجاهد بودی و به معنای واقعی کلمه در راه خدا جهاد کردی جاهد تفلا حق جهاده تو قرآنم هست که همین جمله از قرآن اتخاذ شده دیگه خدا در قرآن می یا یا ایوهاللزین آمن جاهدو فلاه حق جهاده امر خداست که در راه خدا جهاد کنین اونطور که شایسته جهاده اینجا میگد یکی از کسانی که قلاصه از مصادیق خیلی روشن این آیه است امیر المومنین علیه سلامه در رابطه با جهاد می میکنم که ام تو فرهنگ دینی هر کاری رو که میخوان بگن که خیلی ثواب داره میگن ثواب جهاد داره ثواب شهادت داره از اینجا استفاده میشه که عظمت جهاد برا همه بدیهیه مثلا میخوان بگن که کسی که عرق میریزه به زحمت و مشقت مال حلال کسب میکنه که زن و بچهش تو آسایش باشن این کار خیلی مثلا پیش خدا ثواب داره میگن کل مجاهد فی سبیل الله این دمجه ببهمه الکاد و ایاله کل مجاهد فی سبیل الله اونی که خودشو به مشقت میاندازد که زن و تو آسایش قرار بده مثل کسیه که در راه خدا جهاد میکند یا مثلا اگه بخوان بگن که مرکب عالم خیلی فضیلت داره میگن که مثل خون شهیده اینجا تعریف از شهیده مداد العلماء یعنی کدما و شهدا این از شهید دارن تعریف میکنن یعنی میگن مقام شهید یه مقامیه که مرکب عالم تازه میرسه به پای او من توجه بنمید خلاصه یکی از چیزهایی که بدیهیه که مقام خیلی رفی در دین داره جهاده تو روایت هست که عباس اموی پیامبر این حاجی رو آب میداد. چون می دونید حجم تو زمان جاهلیتم هم بود دیگه قبل از اسلامم عربا می اومدن تواف این کعبه رو می کردن. این کعبه بود اعمال حجم بود تو همین ایامم هم می اومدن یه بار یه حج کوچیک داشتن تو ماه رجب می اومدن <خف> یه حج بزرگ داشتن که همین زیحجه می اومدن چیزی که از خب اون خانه ای رو تواف میکردن که 360 سد و توش بود دیگه سی سد تو این خانه بود اینا تواف میکرد عباس که اموی پیامبر بود وظیفش آب دادن به حاجیا بود. بود مکه ی جای گرم و خشک و کم آبیه خاطر این یک کار خیلی پرفضیلت بین اعراب این بود که یک کبد داغی رو خنک بکنند خیلی فضیلت داشته شما بیایید تو اون گرما یک کاسه آب بدی به حاجیا این پستی بود که داده بودن به عباس اموی پیامبر که بنل عباس فرزندان اوند <تصفح> اونم خیلی به این پستش افتخار کرد، پست بزرگی بود شیبه این وظیفش نظافت و تعمیر و نگهداری خانه خدا بود که این مثلا خانه اگه ایرادی داشت اینا رو برطرف میکرد کهش میگفتن امارت مسجد اونم خیلی به این پستش افتخار میکرد کلید دارم بود کلید خانم دست او بود یه روزی با عباس نشسته بودند عباس میگفتش که پست من بالاتره که حاجی رو آب میدم افتخار میکردن مباهات میکردن اون میگفتش که نه کلیدداری خانه خدا امارت مسجد بالاتر. یه خورده بحثشون بالا گرفت حضرت امیر رد میشد اون موقع از تعمیر زیر 20 سال بعد بوده باشه جوانی بود نوجوانی بود به هم گفتن که قضاوت این علی ابن عبی با قبول داری با اینکه علی با عباس فامیل بود دیگه برادر بود شیبه گفاره چون این آدم عادلیه و به حق حتما حکم میکنه من قبول دارم اومدن بیش حضرت امیر گفتن به نظر تو آب دادن به حاجی ها یا امارت مسجد حضرت به عموشون گفتن که ناراحت نشین نا. گفت گفت نه گفت. راس شرمنده همچون میکنه گفت نه نا. ناراحت نمیشن گفت به بر نخورا گفت نه به شیبه گفت ناراحت نشی این ریش سفید تو اینا گفت نه حضرت فرمودن اگه من جهاد نمیکردم نه امارت مسجدی بود نه سقایت حاج نمیکنه اینا بهشون برخورد و اومدن پیش رسول خدا که یا رسول الله این چی میگه این یه علف بچه <تصفيق> <تصفيق> این میگه اگه جهاد من نبود نه اماراتی برای این مسجد باقی میماند نه سقایت حجاج آیه نازد شد این آیه که الان تو قرآن هست شن نزولش همین قصه هست اجهالتوم این خدا چی میگهد؟ اجهالتوم سقایت الهاج و الامارت المسجد الحرام کمن آمنه بالله و جاهد فی سبیله آقا <تصفيق> شما عقل نداریم فکر نداریم شما آبدادن به حاجی ها رو تعمیر خانه خدا رو اینو مساوی کردین با جهاد در راه خدا خب کورم میفهمه آقا جهاد کجا اون کجا خدا رحمت کنه مرحوم امام رو یه روز من یه بار برای تو اینو گفتم تمام امام جمعه های کشور اومدن دیدن ایشون این چطمال سال پنجه و خیلی من دوست دارم این نوار رو یه وقت در مجمعه کنید تلویزیون رو کنه قبلش اعلام بکنه که مثلا ما چهارشنبه ساعت فلان پخش می‌کنه. این سخنرانی امام برای اعمه جمعه کل کشور اونم امام جمعه های صدر انقلاب که الان یه دونش نیست مثلا یکیش شهید صدوقی بود امام جمعه یزد یکیش این اشرفی اصفهانی بود یکیش دسته بود مثلا یکیش مدنی تبریز بود مثلا همه اینا اگه الان بودند اولا چقدرشون که شهید شدند الان همه کسی شمردم همه اینا شهید شدن هر چهار تاشو اگر همینا بودند الان هر کدومشون از مراجع تقلید بودند از از اینا که الان رساله دادن عالم نبودن کمتر نبودند نبودن یعنی آدمای مجتهد مولای عابد امام دیدیم که بی مقدمه هم شروع میکرد امام بسم الله الرحمن الرحیم گفت من تو این جلسه هر چی بگم حرف اضافه زدم گفت نه اولا بگم شما اینا رو بلدین یه وقت من میگم اوگا من هر چی بگم اضافه از چون شما همه اینا رو بلدین گفت نه بلدین چون همه اینا رو شما عمل میکنی یه عمر داری اینا رو عمل میکنی اینجوری شروع کرد اما آخر سخنرانی یه جمله به اینا گفت خیلی شنیدنیه گفت یک عمر عبادت خدا کردین خدای شالا از همه تون قبول کنه <تصفح> به کی؟ به مدنی به صدوقی یه عمر نماز شب خوندین روزه ماه رجب گرفتین قراعتها ختم قرآن کردین خدا قبول کنه اما گفت یه چند دقیقم وقت بذارین نامه این شهده رو بخونین ببینین اینا کجان و ما کجایی میتوند جام میکنیم جهاد کجا اجتهاد کجا یه چند دقیقه گفت یه ده بعد فرموندم من خودم به سهم خودم که حالا همه چی بود دمام گفت هر وقت این وسیعتنامه ها رو میخونم احساس هقارت میکنم میگم ما کجاییم و این جوانهای 17 ساله کجا حالا من از شما سوال میکنم کسی که نماز شب میخونه بالاتره یا اونی که برای نماز تکه تکه میشه چون میکنم تا اینا قابل مقایسه نیه و کسی اینا رو فهم نکنه خیلی عجیبه اونی که ما رمزون ختم قرآن میکنه بالاتره یا اونی که برا حفظ قرآن میره زیر تانک زیر سومع اصب به نظر شما قاسمی که برا دین تیکه تیکه میشه بالاتره یا اون پیرمردی مردی که تو دل شب داره قرآنو میخونه و عشق میریزد خدا آقای قراحتی می گفت من اوایل انقلاب رفتم مصر گفت اینا منو بردن یه مسجدی و اونجا آمار دادن که ما الان یک میلیون حافظ قرآن داریم که خب ما اونموقع هنو کار مکردیم، الان ما هم داریم الان شاید ما بیشتر از یک میلیون داریم من تو یه مسجدی رفتم نماز بخونم یه دختر 6 ساله رو آوردهن مدرسه نمی‌رفت کل قران رو حفظ بود یعنی <تصمت> هنوز حرف فارسی رو بلد نبود خوب بزنه همه قران رو از حفظ میخوند انا خب ما هم کار کردیم داریم اون موقع اول انقلاب بود هنوز ما کار نکرده بودیم گوینا میخواستن ما رو کوچیک کنن گفتن ما یک میلیون داریم بعد گفتن شما چنتا داریم گفت خدا گذاشت و دهن من گفتم ما 20 میلیون جوون داریم که حاضرن برای قرآن تیکه تیکه بشن. گفتم تمام مسجد تکبیر می کن. گفت این ها چه دیوانه هایی این گفت ما 20 میلیون جوون دارم حاضرن برای حفظ قرآن پاره پاره شن. اونی که آقا میره زیر تانک که قرآن بمونه بالاتره یا اونی که قرآن رو از حفظ میکنه از بر می کند. به خاطر این جهاد آیون یه چیزی که بخ... خدا میپهماید فضل الله المجاهدینه علالقاعدینه عجرن عظیم ای... یعنی من نیجایم اصلا مجاهد با غیر مجاهد قابل مقایسه خیلی مهمه یکی رو بگن مرجع مجاهد به خدا خیلی مهمه یکی بگن معلم مجاهد مدداه مجاهد خطیب مجاهد اولا این لقب خیلی مهمه از که امیر امام چی بود آقا مجاهد بوده میگن سع سعت ابن سوهان بود وقتی علی رو شبه بیسته کم دفت کردن اومد بالای قبر امیر المومنین. تو همون تاریکی جملاتی میگفت مثل بارون خودش گریه میکرد هرکی هم میشنید گریه میکرد می گفت از دنیا رفت اون امام مجاهدی که در راه خدا این جور جهاد کرد هی hey, جهاد می گفت و اشک همون همونجا که بدن علی رو می‌شستن آقایون تمام این بدن پر بود از جراحاتی که از جهاد تو این بدن برداشت شده فقط گفت تو احد من 90 زخم بدنم برداشت 90 زخم کاری یا نه زخم معمولی می فهموندن بعضی از این زخما اونقدر عمیق بود من با صورت زمین می خوردم گفت ملائکه می اومدن زیر بغل من رو می گرفتن. بلند می کردن می گفتن علی پاشو اسلام نیاز داره به جهاد تو، به شمشیرتو به قبل می اگر جهاد علی نبود اصلا دین من به جا هر گردن کلوفتی اومد آقا در مقابل اسلام قد راست کند علی بینیشو به خاک مالید ج... جهاد عجیبیه اولا این خیلی مهمه که آدم مجاهد باشد یه جمله از خود امیر بگم حضرت میفرماید: فرماید الجهاد بابون من ابواب الجنه از خود نحجی بلاقه دارم میگم میدونید می بهشت تا در داره یه درش باب جهاده ان الجهاد باب من ابواب الجنه جهاد دری است از درهای بهشت فتحه لخاصت اولیاء خدا این درو نگفته که رو اولیاء خودش باز میکنه نه نه نه خیلی آقا اولیاء خدا هستند اما از این در نمیتونن وارد ششن خیلی آقا از اولیا نه فتحه الله لخاصت اون خدا برا خواص از اولیا خودش این درو باز می کند یعنی برای کی یعنی برای قاسم ابن نژان برای عباس برای حبیب ابن مزاهر اینا هم هر کی میره اون تو تیکه تیکه حذف بدنهایی که با شمشیر و نمیدونم سلاح چی شده تکه تکه شده ببین خواص از اولیاء خدا از باب مجاهدین وارد میشن اما در مورد امیرالمومنین نمیگه علی مجاهد بود میگه اشهد و انکه فی الله حق جهاده من راجبه این حق جهاد همین این بحثو دیشب تن دیروز تنظیم میکردم چند نکته میگم نمی‌دونم اینو چجوری معنی کنم که علی به معنای واقعی کلمه مجاهد بود من مثلا یکیش این هست یه د قبل از پیروزی جهاد می‌کنند یه د بعد از پیروزی جهاد می‌کنند حالا مثلا تو هم انقلاب ما یه د قبل از انقلاب مجاهد بودند خیلی هم کم بودن خیلی کم هم کسانی که قبل انقلاب کتک خوردن شکنجه شدن اصلا اعدام شدن یکی همین شهید آیت الله سعیدی اینو قبل انقلاب اقاد زیر شکنجه های مرگبار سواک از پادر اومدن مثل این شهید آیت الله قفاری خیلی قبل از انقلاب شکنجه شدن، حبس عبد شدن. مثلا سال چلو پنج دستگیر شده، حبس عبد شده، سال پنجا با پیروزی انقلاب از زندان اومده بیرون. حالا این آدم چقدر احتمال میداد که انقلاب پیروز شه؟ مثلا اون کی سال چلو پنج شده. اگه شما بگی آقا این یک در هزار میگفت در عمر من انقلاب پیروز میشه بازم باید به عقل و اوشک کرد <تصفيق> اینا فقط میگونتن تکلیفه اصلا هیچ امیدی به پیروزی نداشتند امام هم همینو میگفت امام میگفت ما مکلفیم که مبارزه کنیم شاید نتیجه نگیریم چقدر آقا اعتمال داره چند تا روحانی تو زندان برن حبس بشن و رژیم پهلوی رو از پادر بیارن؟ بلی خوب اینا جهاد کردند اما یه انقلاب پیروز شد حکومت دست مسلمان‌ها افتاد دست شیعا حالا مجاهد شدند این جهاد کجا اون جهاد کجا خدا همین رو میگه ازا جا النفر الله والفتح میگه بله نصرت خدا بیاد پیروزی بیاد و رعی تناس یدخلون فی دین الله جا بعد از بیروزی یه جا داشتن حسینیه می‌ساختن ما رفیق ما هم اتفاقاً بنده خدا می‌ساخت من یه ای که بهش گفتم هنوز میگه تعجب می‌کنه گفتم حالا زحمت می‌کشید نیت خالص کن برای خدا اما اینجا ساخته بشه ازت می‌گیرنا گفتم الان الان ساخت هنیش که جلو نمیاد تعجب اما آش که پختشه خورندش زیاده گفت یعنی چی گفتم خب پب... گفتم نیه بند خدا ساخت اومدن گفتم میخوایم اینجا رو امنایی کنیم چرا یه نفر گفت خب ما وقتی میساختیم چرا امنایی نمی کردیم حالا که ساخته شده امنایی کردن این هم شد یه عضو کم کم رعی کردن این رعی هم نیورد حالا دیگر سر بیند آش که ساخته شد خورنده خدام هم همینو میگه اذا جاء نصر الله و پست که بدن همه میان اینقدر آدم اومدن بز گرفتن اینا اصلا ز... یه روزم زندان نرفتن نه زندان جبه نرفتن دیگه وقتی پست بدن میان دیگه آدمی که آقا یه روزم جبه نداره وزیر شد آدمی که هشت سال جبه داره آسانسور میبره بالا و پایین و همین وزیر رو ببره بالا بیارد پایین تا که پخته بشه خلنده زیاده خدا هم همینو میگد ازا جا نسر الله و الفت ورعای تناس فی الله افواجا میگه بعد پیروزی که اینجوری نیه. کرور کرور میان وارد دین میشن اما کی امروز ایمان آورده وقتی از خدیجه به خوبی یاد میکرد پیغمبر یه روز آیشه گفت چقدر این پیر زن عجوزه رو تو اسمشو میاری خدا بهتر از اون به تو داد چون باکره بود آیشه آیشه با... حالا ما نمیخوایم بگیم خدیجه هم باکره نبود ولی حالا این باکره بود یه خوردم سرخ و سفی همیرا بهش میگفتن دیگه یه میدار زیبارو بود عربا به زن زیبارو میگفتن همی من زیوارو بود خب باکره بود میگفت خدا بهتر از اون پیامبر فرمودن که هرگز هرگز گفت اون روزی به من ایمان آورد که همه به من پشت می‌کردن <تصفيق> چون اون روزی همه چی شو در راه من داد که احمد دستاشونو صفر گرفته بودن الان که مجاهد زیاده که بعد این یه آیه از قرآن نوشتم لا یستوی کم توجه بفرمایید لا یست میگه مساوی نیست برای خدا من انفقم من قبل الفتر و قاتل اونایی که قبل از پیروزی انفاق میکردند و جهاد میکردن با کیا با کسانی که بعد از پیروزی انفاق میکنن و جهاد میکنند بعد پشترش میکرد اولائه که اعظم و درجت هم من من بعد و قاتلو میگه اونا کجا اینا کجا؟ اونی که قبل از پیروزی تو زندان شکنجه میشد کجا؟ اونی که امروز با اسرائیل مبارزه میکنه کجا؟ با امیر امیرالمومنین آیون هم قبل از فتح مکه هم بعد از فتح مکه هم قبل از هجرت هم بعد از هجرت علی جز مجاهدین بوده. حالویه دی نه مکه که فتح شد ها که یه های پیدا کردن اونا اومدن جز مجاهدین اینجا نمیخوایم کار اونا رو بی‌ارزش کنیم اما اونی که قبل از فتح مجاهد میکنه اصلا قابل مقایسنی با کسی که بعد از فتح میاد جز مجاهدین میشه این یکی ببین توجه یکی دیگه این است که بعضی آقایون جماعت زیادی اگه برا جهاد بیان میان مثلا بعضی الان بگن آقا اسمی نویسیم برای سوریه و این ببینن میلیونی مردم دارن میاد. این هم میاد. میگه که همه دارن میرن ما هم میریم. هرچی به سر اینا هم سر ما میاد. اما بعضی تک و تنها باشن میاد. چون اینا با هم فرق میکند. بله یک ده اگه ببینن جمعیت زیادی آمده برای جهاد اونا هم میان. خدا همین رو در قرآن میفرماید قل انما اعذكم بواحده ام تقوموا لله مسنا او فرادا پیغمبر به اینا بگو من به یه چیز شما رو موعظه میکنم برای خدا قیام کنید تنها هم بودین قیام کنین هم هم بودن قیام کنید بعضی جمعیت الان مثلا شما ور امام زمان بیاد یه دفعه شما خونیم میلیون ها نفر تو ایران دارن میرن اسم بنیسن برند. این که همه دارن میرن ما میریم دیگه خریدی جبه رفتن ها اینجوری بودی که ما تو محل میدیدیم همه جوونا رفتن ما یه دونه موندیم ما دیگه روون نمیشد هستن می ما ما اسمونو بنویشتیم بودیم الان همه میگن و همه رفتن یه دونه موند تو محل خب همه رفتن ما هم رفتیم اما یکی میبینی آقا همون یه تک و تنها میاد در را خدا علی آقا در احود تک و تنها دفاع میکرد مثلا همه چیش عجیب و غریب مرتضاید نیم همه فرار کردن رفتن علی یه دونه مونده بود. هی <تصفيق> hey, پیغمبر اینا رو صدا میزد میگوه آقا فرار نکنین منو تنها نذارین خلیفه سوم که تبری میگد بعد سه روز اومد احود سه روز بعد از جنگ احود برگشت پیغمبر بهش طعنه زد گفت آقا این تپا می‌رفتی امن بود تو چقر را رفتی که سه روز کشید برگردی نه <تصفح> جا میکنی که و همین می‌رفتیم بالا تپه تماشا میکردیم همین تبریت اونجا می‌نیساد که این ننگ بزرگیه برای مسلمانا که هیچ جوری پاک نمیشه که سه خلیفه بعد پیغمبر در احد گریختن و پیغمبر رو تنها گذاشتند وی هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم که این سه نفر فرار کردند اما امیرانوان تک و تنها دفاع میکن. خودش میکنه خودش میگه نوت زخم برداشتم شمشیر شکست ملائکه برایش زلفقار آوردن گفتن که شمشیر نداری با این دفاع این زلفقار به هشتی بود زمینی نبود ملائکه دادند. آخر ردن تشفیقش میکردن لا فتا الا علی لا سیف الا زلفقار یه تنها دفاعه. اونی که یتنه دفاع میکنه و اونی که با گروه کثیری میاد اینا با هم فرق میکنه بازی از این دیگه بگ... من هشت نه مورد نوشتم آها ولی میدونم شما حوصله نمیکنید. دو سه موردشو میگم این دوتا یکی اینکه اونی که قبل از پیروزی جز مجاهدینه با اونی که بعد از پیروزی جز مجاهدینه تفاوت میکنه یکی این یکی اونی که تک و تنها جهاد میکنه با اونی که با گروه کسیری میاد جز مجایدین میشه تفاوت میکنه بعضی ها تو جهاد نظامی مثلا ید طولایی دارن اما در جهاد با نفس جا میزنن بعضی اینجوری مثلا شما اگه بگید آقا میخوایم جنگ الان بریم چریکی پارتیزانی فوری میدستشون نویزه اما اگه بگیم آقا بیایم جهاد با نفس رو نخوریم انو میگه آقا دیگه بازی در نیار دیگه من نخورم اصلا نمیدونم بجنگم میگه میگه هم بجنگیم هم نخوریم هم روزه بگیریم همین خور تو تمام های جهاد یک کتابه اما خیلی دارید در صحنه جهاد نظامی سردارهای بزرگی بودند اما جنگ که پیروز شد در جهاد با نفس باختند بچم میکنه احتمال روزه رو شدن همون سرداره های بزرگ در جهاد با نفس دیدی که همین که از جنگ که بر میگشتن پیغمه در جنگ کوچک سرفراز بودین من دعا میکنم تو این جنگ بزرگم اینا گوتن آقا دیگه ما را جنگ کی میخوای ببری؟ گفت جهاد با نفس سه جهاد دیگه جهاد با مال جهاد با جان که جهاد با نفس بازی و جهاد با شمشی رو میاند مثلا شما بگی آقا بیا بریم جنگ میان، اما اگه بگی خونتو بفروش در راه خدا بده جا میزنه میگه میگه آقا من دیگه هم پول بدم هم بجنگم می میگه من دیگه مثلا بگی آقا موتورتو بفروش در راه خدا بده جا میده بگی مثلا یه شامتو بده جا میزنه امیرالمومنین هم تو جهاد مالی هم تو جهاد نظامی هم تو جهاد با نفس تو همه اینا سرداره یگانه‌ای روزگاره یعنی همون آدمی که در جهاد نظامی اونجوری خوش می درخشد سه روز قضاشو میده به یتیم مسکین و اسیر با آب افتار می کند و تو جهاد با نفس من توجه بکن تو همه عرصه‌های جهاد به خاطر این می گد که ما شهادت میدیم که تو جهاد کردی به معنای واقعی کلمه بعضی ها اگه جهاد کنند تشویقشون کنی میان. مثلا بگن شهید مدافع حرم نمیدونم تجلیل کنند جنازه کنند اما اگه بگن آقا هم بعد شهید بشی هم دفنت نمی هم همه تو رو خارجی میدانند کربلا اینجوری بود کربلا دیدنه شما شهید بشی بیان حلوه علوات کنند نه بدن تو میذاشتن گرگا بخورن بد درنده های بیان میگونن اصلا اینا ارزش دفت کردن هم ندارن وقتی امام زین العابدین رد میشد چشمش افتاد به این بدن پ... پدرش حسین اصلا قلبش وای میسا گفت امه جان اینا کشته های خودشون رو دفت کردن یک کشتشون رو زمین نیست اما بابای منو انقدری حرمت قائل نیستن بدنشو به خاک بسپارن تازه کاش دف نمیکردن. کردن اسبارم نعل تازه بزنن رو بدنش اونند اما تو همه این عرصه ها ببینید بخوا... اینا جهاد میکنن و یه یخافونه به قول قرآن لومت لائم و اهمیت نمیدن که سرزنش کننده ها چی میگن. بعضی ها حاضرند مثلا های عملیات من زیاد بذار دیگه عرضم رو تمام کنم میشه پنجت تا دیگه به همین اکتفا میکنم من تو شبه عملیات میدیدم جوان ها به هم دیگه میگفتن خدا کنه شهید شیم جانباز نشیم با خدا هم شهید بشه آخواد اصلا عروسی پیش جانبازی هنان جانباز هست 40 سال، سی سال، 25 سال قتل نخا است. مثلا یه مواینا رو مثلا چقدرشون رو دیدم. مثلا یکی بود سید حسین بود از دوستان مثلا این همیشه رو تخت دمر بود. همین آقای انسانی خونش هم اینجاست مداح با اینا رفته بود برای من تعریف می‌کرد میگفت گفت من می‌خوندم این می اومد پای خوندن من خیلی هم خوش عشق بود. گو منم لذت می‌بردم مدو دا دوست داره آدمای خوش عشق بیان پای منبرش بشینن دیگه لذت می‌بره خوب گریه کنند. اگه ببینه گریه نمی‌کنن ندخش بند میاد گفت این خوب گریه می‌کنه منم یه چند بار اومد دیدم دیدم, دیدم دیدم دیگه نمیاد یه روز دیدمش دارم می‌برنش رفتم جلو گفتم صدای ما انقدر نکره بود تو طاقت نمیورد دو سه جلسه بیشتر گفت نه اتفاقا عاشق صدای تو هم گفت که من نواراتو رو گفتم بگیرن بیارن تو اتاق گوش میدم من گریه رو تو اتاق میکنم نخو خب چرا نمی گفت من گریه که میکنم این بینیم اینا میاد رو دهنم دست ندارم اینو پاک کنم خجالت میکشم این جانبازه این یه جانبازه بیس پنگ داره. خب شهید یکی میگه آقا شهید بشیم جانباز نشیم من اینا رو شنیده بودم اینا که میگم اینا شنیده یکی میگه آقا جانباز هم شدیم اسیر نبا اسیر بدتر از جانباز اسیر رو میگیرن آقا با کابل میزنن با نپشی میزنن با چوب میزنن با آهن میزنن اصلا دیگه رحم نمیکنن به اسیر میگه اسیر یکی میگه حالا خودمون اسیر شدیم بشیم ناموسمون اسیر دخترمون رو اسیر نکنن حسین آقا همه اینا رو در راق دار این جهاد کجا؟ بعضی میگن دا این اندازه ما میایم که شهید شیم اما میگن حاضری تو به اسارت ببر میگه آقا من دیگه ناموز هم اما امام آموسین آقا همین میگن اشهد و انکت جاحت تفلا حق جا من پنج نشه گفتن هشت نه مورد نمیشتم بازه منحصره به اینام نیست یعنی ممکنه کسی بشینه فکر کنه چیزای دیگهی به ذهنش برسه تو همه این عرصه ها امیر الموم شما میگه علی مگه ناموسش رو به اسارت داده مگه نداده مگه نواهای علی رو به اسارت نبردن مگه من یه روز آشورایی رفتم یه جا یه منبری اومد بالا منبر سیدم بود اما علوی بود ما حسینی بودیم اون علوی بود خیلی آتش بود از اون رو منبر میگم من از اول هشت صبح یازده رفت منبر گفت من از هشت صبح اینجا نشستم این همه واعظ رفتم منبر این همه مداح رفتن منبر همه به حضرت زهرا تسلیت گفتن سلسلا یکی به علی تسلیت نگفت بعد یه ای گفت واقعا آتش پا کرد گفت این حضرت زهرا که این همه بهش میگن سر سلامت یه پسرش کربلا شد. اما علی شش پسرش این بود در کربلا به شهادت رسید مگه علی آقا همه در راه خدا نداده اصلا کی به اندازه علی در راه خدا آقا جااد کرده همه چ در راه خدا داد مولای ما دا ماده می میگن اشهد و انکه جاهد تفه حالا که همه اینا رو میکنه حلوه حلوهاش میکنن علی رو تا هشتاد سال لحنش هم میکردن <تصفح> اصلا دیگه آقایان یعنی این دیگه نهایت جهاد امیر المومنینه حالا یکی مثلا شهید خب ش... همه جا میگن شهید چمران الان سال چندومیش رو دارن میگیرن میگن شهید اشرفی ازاد شهید همت. اما علی آقا تو همه ی های جهاد یک کتاز بود بعد از شهادتش تا هشتاد سال لعنش میکردن تو مناره ها تو قنوط نماز ها بالا منبره این عمر ابن عبدالعزیز وقتی میخواست لعن امیر المومنین رو ممنو کنه جرعت نمیکرد میترسید کودتا بشه رئیس حکومت بودا رئیس حکومت جرعت نمیکرد آخر یه صحنه درست کرد گفت یه روز عید همه لشگری کشوریا کشوری ها اصلا به یه یهودی یاد داد گفت اینا که میان مثلا عید فطر رو من تبریک بگن سران کشور تو بیا دختر منو خواستگاری خاستگاری کن همه کرده بود این یهودی آمد تو سلام کرد عمر ابن عبدالعزیز گفت کار چیه گفت اومدم خواستگاری دو علما اونجا بودند علما فرق گفتن ما به یهودی که نمیتونیم دختر بدین تو مگه این گفت چلا پس پیغمبر به یهودی دختر می‌داد؟ گفتن کدوم یهودی به گفت مگه علی داماد پیغمبر نبود آتا این همه این علما بودن علی یهودی بود او اولین کسی بود که به پیغمبر ایمان اولو من آمنه به رسول الله گفتن پس اگه یهودینی پس چرا لحنتش می‌کنی. و من بخیالم یهودی شما تو قنوت لعنش میکنید اگر این اولین کسی است که به پیغمبر ایمان آورده این همه فضائل دارد شما اینشو لعن عمر بن عبد گو جوابشو بدین گفتن آقا ما نمیدونیم چی نمیدونیم چی بگیم گفت من دیگه نمیذارم تو کشور لعن علی باشد اون نمیشه ما از این ور لعنش کنیم از اون ور بگیم که او اولین کسی بود که به خدا و رسول ایمان آورد اون مجاهد اهد بود بدر بود هنین بود فاتح خیبر بود اون مرهب کش بود امر ابن عبدالبت کش بود این همه فضائل بگیم برد علی رو علی مجاهدیه که آقای هم تو همه عرصه های جهاد بوده هم همه جا رو لند کردن بعدم یه جمله بگم دیگه دلاتون میسوزه به امام حسن میگفت حسن جان شبونه منو بخو. گفت جنازه‌م هم بهش رحم نمی‌کنن بدنم هم با آتش می‌کشن آقا این این چه مجاهدی بوده گفت این چه جو شب منو تو تاریکی ببر بعدم گفت چهار تا صورت قبر بکن یه دانه کجا بکن یکی کجا بکن دانه... که به قبر من کشف نشه اینا اگر بفهمند به بدن منم رحم نمی‌کنن این علی مظلوم‌تر یا حسن ابن علی دیگه دلاتون رو ببرم در خونه امام حسن یه جمله هم بگم امروز روز تخریب قبرستان بقیه اما خواهش کنم جوانا خانوما آیون به چشماتون اینجا بیت الحسن هم هست دیگه اینجا برد یه جور دیگه گریه کنید خونه امام حسن اینجا به چشماتون التماس کنید برا حسن ابن علی گریه کنه امروز بگین اصلا به چشمت بگو آبورو ما رو جلو فاطمه بخرد خدا ناله بزنیم برا حسن ابن علی تا این مارمزونم اینجا گفتم هر جام برین مدداها و عزا میگن چی آقا حسین قریب همه میگن حسین قریب بود اما این امام حسین یه بارگاهی داره مثل کربلا هر جای این کربلا وایستی گنبد امام حسین میدرخشه اما اگر الان بقی بودی یه سایبون بالا قبر اصلا یه سنگ قبر نداره حسن ابن علی چند تا سنگ اگه شب بری بقیه یه شم بالا قبر امام حسن روشن داره. این امام حسن میگن یه زنی داشت مثل رباب یه سال کربلا گریه میکن اقامه اعضا میکن این بنی اسد هرچی خواهش کردن خودم بیا زیر سایبون آقا گریه میکنی زیر گفت نه نه من به خودم اجازه نمیدم بدن امام حسین سه روز زیر آفتاب باشه من برم زیر سایمون بشینم اما این امام حسن روزه بود با لبهای های جگرش جگرشو پاره پاره کرد جده. کاش دیگه این امت به همین اکتفا میکرد دلها بسوزه برا آقایی که این امت به جنازش هم رحم نکردن این بدن متحر رو دست تشریه کننده آش تیر میگن کنار بقی این برادرها جمع شدن یکی یکی تیرا رو از بدن امام حسن خواهد. بعضی میگن تا هفتاد تیر امام حسین هی hey, صدا میزد قارت زده کسی نیست اموالشو قارت زده منم یه داداش مثل تو رو اینجوری دارم میخوام. اترسه مال نمیکنم محاسنمو خ... میگن اینجا شلوغ بود دیگه خیلی شلوغ بود تشیکننده زیاد بود اومدن زیر بغل امام حسین رو گرفتن بلندش کردن نذاشتن خیلی گریه کنه رسمم همینه داغ دیده رو میان زیر بغلشو میگیرن دورش میکنن اما کنار القمه دیگه محرمی نبود همین اندازه بیان زیر بغل امام حسین رو بگیرن اونجا یه دست به کمر گرفت یه دست به آنان زلجنا هی hey, صدا میزد امرو دیگه کمرم شکست علیام انكسر از زهری و قلت هیلتی